شنبندگان عزیز خوش اومدیم به راژیو نواهنگ من فرهاد زمانی هستم برنامه این هفتمو مسایبه ایست با یکی از شاعران خوب داخل کشورمون کسی که مطمئن هستیم شما او را دوست دارید کلامشان زیبا و دلنشین است خانوم هیلا صدیقی درود بر شما خانوم صدیقی خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید که میتونیم با افتخار با شما عزیز مسایبه ای داشته باشیم امرو باشند ما و به همه اون کسانی که داخل اوضاع این سال هم میشن آمده من هم خیلی ممنونم که این وقت رو داشتیم من قصد بسید که بزنم باشند ولی کن خودتون و بعدی باشند باشند خب اش میکنم میخوام از شما درخواست کنم اگه اشکالی نداره یه مقدار از باگرافی خودتون قبل لزین که سؤال اول هم رو مطرح کنم توضیح کوچیکی بدید که شنوندگان بیشتر در موردتون بدونن خب اش میکنم من متوالیه فارغیم از داروسی سال ششم چهار هستم متوالیه تهران و تا به حال مدرک تحصیلی که دارم دیسانت حقوق هست و در زمینه شهرناکشی و یکی دیگه آرایه تری بهنایی با خودم تلاش میکردم. بله بله. بسیار عالی. اگه چیزی بدهیم میخوسم سوال اول خودمو ازتون بپرسم. ممکن بفرمایید از چه سختی زندگی تویون بهترین تجربه را گرفتیت تا الان؟ خب من یه کفتش داریم قان چه سختیه؟ در واقع هر کدوم از سختی‌ها و مشکلاتی که توی زندگی برای الان پیش میان، هر کدومشون بنویی یک آزمونم که در نهایت تجربیات خیلی خوبی رو نشیده آدم می‌کند. باقلی یه جنبه معروفی هست که میگه هر زخمی که من آنکش قلیترم می‌کند. من توی زندگیم دلیل هر اتفاقی یا هر سختی یا هر مشکلی که پیش میاده بهترین چیزی که ادارش دریافت کردم و تجربه ای که به دست آوردم این بوده که توان خودم رو و اقدام خودم رو تو اون سختی محقق کردم و حس کردم که هر بار بعد از پاس کردن اون شرایط خیلی قویتر از قبل بودم. لذا تو نه سام زشت کنم و میشه با یه جورایی اذکر کنم که می‌باید خیلی بزن بگی آخ کرد یا قه کرد یا درسته. وقتی که شرایط سختی پیش میاد آدم فکر کنه که در واقع همه چیز تحموم میشه. اون چیزی که من یاد گرفتم اینه که سختی‌ها سرمایه‌های زندگی من هستند. چون در واقع توی روزهایی که بیشترین فشار با آدم وارد نمیشد. در عرض یک جای دیگری باعث یکی از اتفاقات خوب توی زندگی انسانها باز میشد. و واقعا برای من اینطور بوده. بله، ممکن بفرمایید که به کودوم از سروداتون بیشتر دل بستگی دارید. بنظرم هیچ شاعری نمیتونه به همه شرایط خودش خیلی تفافتی قائل باشد. علاوه بر همه اون هزاری ذهن یک نفر هستند و. همهشون دوست داشتنیان، اینکه کودکشتر پیتره، کودکشتر قویتره، کودکشتر تکنیکیتره، اینارو نیست روشن سوالف کرد. در مورد دل باستگی شده ندارش سخت‌تر باشه، اما من اگر بخوام از بهیم یک شرایخودم می‌کنم تهیه کنم که بیشتر منو از لحاظ مختلفی از خودش کت، شاید شرکه لطف داشته خالی مانده است، یا به دلایل مختلف. اما این دلیلش نکه این چه تنها شعر زندگی من بود که من وقت سرودن خودم برای عشق کلیختم اونقدر که اون تو اون شعرهای تحت تحصیل و اون شعر قرار گرفته بودم و برخلاف شعرهایی مثل مثلا مثل سبز هست دوباره که برای بفتنشون به خودم گاهی سخت گرفتم بالا پایین کردم تشه رو بفتم ولی کلاس درست خالی مانده هست و مثل یک اتفاقی که توی ذهن اتفاق میفته جریان پیدا میکنه خیلی سری اومد و روی کاغذ نوشته شد و خیلی سری تموم شد و هیچ انرژی هم از من نگرفت تمام احساس من بود که با حاموها بخوام من بیرون نیومد و بلکه فعلا بعد از انتشارش هم این شر شری بود که یک پله ارتباطی خیلی خیلی طویل بین من و مخاطبان من شد و یک جوایز زندگی منو دستکش تحولاتی کرد. بله. آیا شده به دلیل شرایطی با شیر و هنر قهر کنی هیلاجان؟ هیچ شده مامو به اینکه یک ام کار هنری رو یک مدت که انجام ندادم چند سال نکاشی نکشیدم و یک, یک سال کامل هیچ شری نداشتم ولی به دلیل قهر کردن نبوده یعنی من هیچ وقت دوست نیم به حسی نارسیم که لازمه با خنای قهر کردن. درسته بسیار جواب پسندیده بود. توی سرودهات نشانی از ترس نیست این شجاعت از کجا میاد اول این که این نظر لطف شماست دوبار این که من اون کاریزو که باور دارم به درستیش、بله. به حسنش به خوبیش اون کار رو انجام میدم وقتی چیزی برای من عرضش باشه چیزی برای من آرمان باشه اون آرمان ها و اون عرضش ها تحت هیچ شرایطی قابل تغییر میستم و تحت هیچ شرایطی هیچ چیزی نمیتونه مانع رسیدن من در اون عرضش ها و آرمان ها باشه من متقل اگر چیزی درسته باید اتفاق بیفته یا اگر حرفی حقه باید گفته بشه شاید باور عمیق من به صداقت و روح حرف هایی که توی شعرام میدنم بوده که باعث شده که به سراحت بیانشون بکنم بله باعث و افتقار همه ما ایرانیان هستی بهترین روز زندگی فکر میکنی چه روزی خواهد بود هیلا جان فکر میکنم هر کسی بهترین روز زندگی زمانیه که همه عزیزانش در کنارش باشن و بتونه عشق و آرامش و همه که در کنار هم داشته باشه و من به اضافه همه این احساسا دوسام که همه همه عزیزانشون داره کنار خودشون داشته باشند. همه اونایی که یار سفر کرده ای دارند یا به هر تاریخی یاری دوست خودشون دارند یا عزیزی دارند که ام ام این روزها دعیره مثال مختلف فردان یا بیماری دارند. همه اونها به طوری در کنار هم باشند و توی نگاه مردم شهر 30 ساله دوستی باشه محبوبی باشه. شایدی هم فک خیلی به نظرش آری بیاد و شاید کیفی شی شده باشه اما واقعا برای من چیزی خارج از کیفیت است و همیشه خیلی امیدوارانه به این قضیه نگاه کردن که روزی اتفاق می افتد که مردم واقعا با هم آدوس باشند که بچه های فردای این سازمانی وقتی متوالیشند نگران دردآورها و ترسها و بیامیختی آشون نابود شن. بله، مطمئنم و من هم امیدوارم که این اتفاقی بزرگی بیفته. توی صفحه فیسبوکت متوجه شدم پیامهای دوستیو سال زیاد داری. چی باعث میشه انقدر تلاش کنی برای سالهای دوستی؟ خب، فکر میکنم که بوده تیم دایلش میکنه من. اون اینو چی میگه که من از فارسافیزدن دیگری داریم وقتی آدم. مثلاً حتی وقتی که با فارسافیزدن وی خیلی آمیخته شد، در ماهیار به همین نتیجه میرسه. جای خوندم که توی این جهان اینقدر سروت هست که اگر تمام مردم دنیا تک به تک آدم های روی این کوری زمین به بالاترین سروت برسند باز هم اضافه میاد و به کسی کم نمیرسه و واقعا اینطوره اینقدر این جهان بی منتحه هست که اگه تمام تولدتها، تمام شغلت ها، تمام غذاه، و همه ی برکات این دنیا را بین انسان، تمام ادمای روی زمینها پخش نی باز هم تمام می شود و به همه نیرو سر باز هم اضافه می آید. اینکه انسانها به هر دلیلی، به هر دلیلی با هم دچار اختلاف می شند، دچار جنگ می شند، دچار مقابله برودار روی می شند. به خاطر منافعی که فکر کنن، عرار به خودشون داره س، یا به کسی برسه برای سرایی به خودشون نداره س. اما که این نگاه رو داشته باشند که همه می توانند به اون دلچاپرسند که بهتر که همه این چیزهای در کنارش آرامش داشته باشند. چون شما اگر بهترین چیزهای دنیا را هم داشته اید ولی آرامش نداشته باشید در جنگ و رقابت و مقابله باشید هیچ کدومشون هیچ زندگی را نمی ره ما همه یکی روی دنیا می دیم و همه هم امیکی روی دنیا می دیم یک مسافر موقت هستیم تو این زندگی و هیچ چیزی هم بهتر از آرامش زندگی به دست من می آوریم و اون به دست من می آد ما گریم که مردم با هم به صورت جسور بر سامی و منافع ادیار و حالا هر کی که می خواهد باشه اقتصادی باشه سیاسی باشه قدرت باشه شهروند باشه برآبادت انسانیشون تأثیر ندارد. بله بله من خونم شخصاً این روح زیبا و لطیفه تونو ستعیش می کنم به عنوان یک زن ایرانی. از هم وطنانه تون در خارج از کشور چه انتظاری دارید؟ از هم وطنانه خارج از کشور من میگویم که خب آنهایی که از این کشور دوست دارن حالا ممکن است یک ادایی کشورهای توسای آفریقایی بکنند یا کشورهای مدرن تر بکنند. ممکن است دوست داشته باشیم آنها را منزدی میکنیم ولی ممکن است یک سازمانهای مختلف فرهنگهای مختلف و شرایط زندگی مختلف و تجاربی رو که می‌زنیم، زیدهمون، نگاهمون، فرهنگمون، یا حتی چیزیمون ممکن است با شرط تعریف و تحول بشه. و یکسری چیزها رو ممکن است کشوری که دارن توش عالی زندگی می‌کنند رو بخوان مقایسه می‌کنند با ایران. و البته وقت بعد از اون اتفاقات رو این کشور بیفته یا از لحاظ فرهنگی شاید یکسری چیزها رو بخوان دیگه مقایسه می‌کنند. مهمینه که ایران یک فلزمن خریفسیه از آقامه مختلف، شهرهای مختلف، از, از روستاها و شهرها و ادمهای مختلف و همه این ادمها یک سری سوناتهای دارن یک فرهنگی دارن یک آقاییتی مذهبی یک مقدساتی دارن. ممکن است در کنار اینها یک سری فرهنگ‌های قرائتی هم موجود داشته باشه. ممکن است یک سری از سوناتهای رنگ کوهنگی هم حتی و خودش گرفته باشه. پس. هیچ اتفاقی توی هیچ سازمانی و بین هیچ مردم یک شب اتفاق نمی افتد و اگر قراره که فکنگ های خوب ما هم بشهان باید برایشون تلاش بکنیم و اگر قراره مسئله بعد ما حذف بشهان باید از خودمونشون کنیم و اگر قراره تیفهای خوبی به ما اضافه بشهان ما باید شرایط تشخیص را هم بکنیم. من این حیاتمون نمیتونم به مردم خارج از ایران بدم. دوباره به همه مردم که داخل ایران، که خارج از ایران، تفکرات مون رو، ایدالها مون رو در رو خم نکشیم. و باورهای رو که داریم در سطحی از باورهای دیگه قرار دیگر قرار ندیم. و همدیگر رو با همون باورها، با همون اعتقاداتها و با همون فرهنگی که دارند به هم زیمیم. و اجازه بدیم که در کنار هم روشت کنیم و به یک نتیجه مشترک برسیم. چون تازه زمانی که خودمون دیدن خودمون حد کشیم کنیم و با برخی فرقهای کامونات هم جدا میکنیم، هرگز و هرگز و هرگز بهیت به نتیجه خوب مشترک نخواهیم رسی. آفرین. به پردازیم یه مقدار به هنر. چون میدونم هنر و هنرمند رو خیلی دوست داری. از دیده شخصی شما هنر و هنرمند چه تأثیری میتونم بذارن جوی مردم؟ حرف خونار هنر و خنامند از هم جداست. دانست خونار بنابراین خونار یک زبانیه که مصارو به زیباترین شکی بیان میکنه و یک تصویر کاملاً مندهگار داره. شما هیچ حرفی رو تازمانی که دقیقاً با خونار قرارش ندادید نمیتونید مندهگارش کنید و نمیتونید سرآهی با اسپشک که اون توی دل ما دوم، اتیوی ذهن ما دوم، اتیوی روح ما دوم میسوز کنه. اما هنرمند یه تعریف متفاوت هست هنرمند. من میگم که افرادی که توانه هنر نمای دارم خیلی زیادن شد. تمام ادمهای روی زمین توانه هنر نمای کردن رو دارن. حالا در زمینه های واردشته های مختلف هنری فعال میکنن. اما مقام هنرمند چیزی متفاوت هست هنر نمایی. و متاسفانه کسانی که به مقام هنرمند میرسن به تعداد به نسبت تعداد افرادی که هنر نمای می کنند خیلی کم این وقتها و مقام هنرمان کسیه که هنر رو در جایی حب و در جایی درست و برای سب ت لحظه های ناب استفاده می کنه و هنر برایش آبزاری نمیشه برای رفیقان به منافعی که یا منافع مالی یا شهرواد یا هر چیزی و خنده اش اون جایی که باید داشت ما ت مردم قرار میده به دارگیر حساباتها رقابتها و خنده مسائلی که این انسان میبینه میشه لاب خنده دیگران رو هم دوست داره خنده منده واقعی فقط خنده خودش رو دوست داره خنده دیگران رو هم دوست داره کاملاً درست و آن چیزی که این انسان کم می‌ده می‌نمایه آماده خنده منده دقیقاً Uh, هیلا جان به چه سبک موسیقی خودت علاقه من هستی؟、uh, من به همه سبک موسیقی علاقه من دارم من کلا متوارده شدم که این این فآل هاست می دونم که خیلی به موسیقی علاقه دارم و متاسبانه این سبک من تونستم که این、um, افق درانی خودم نستد به موسیقی رو بهش اونقدر پرداخت کنم که به یک درجه خود که بگم بیشتر دیگه خوبه درست می‌کنم که من مصرف دارم هستم و نیستم متشعبانه ولی از همه صحنه‌های مصرف لذت می‌برم، هموقت از آن نیز لذت می‌برم که از پاپ هم لذت می‌برم. زمانی فکر می‌کردم که من هرگز رات گوش نخواهم کرد، نمی‌توانم رات گوش بدم، ولی این اوضاع می‌بینم که رات هم گوش می‌دهم، لذت هم گوش می‌دهم. داغا قب در همه زمینه‌های مصرف علاقه داره. درسته. سازی رو خودت نمی‌نوازی ایلجان؟ اگه سازی رو میتونستی بزنی اون وقت اون ساز چی میتونست باشه؟ برای این که خودم بزنم پیانو رو از همه بیشتر دوست دارم و یه وقتای مقدماتی رو هم برای یادگیش برای خودم شروع کردم ولی نمیتونم بگم که من پیانو میزنم اما به سازهای به صداهای مختلفی تو سازهای سنتی مثل تار ستار نی سنتور القدرالهم به صوت‌های پرستناتی مثلا گیتار. بله بله سازی که از زمانی که فکر می‌کنم خودم روشنختم هم راه بوده با من تا الان. خیلی خوب میدونیم طبیعت ایران زیباست. اما میخوام بدونم کجای بیشتر بنابه طبیعت روهد یا درونت می‌پسندی باشی آلان در حال حاضر. خیلی امتحان. اول اینکه من خوب هم به ایرانگری خیلی علاقه دارم و هم به طبیعت دشوار در بسیاری واسطه واسطه من ولی یک مدتی از طبیعت دوباره شنم میکشم. حالا روزی رو که بی خودم هش میکنم، باعث هم کوه برام، باعث هم دریا برام، باعث خیلی علاقه دارم به طبیعت. چی طبیعت ایران روستای سه واد کوه رو شمال رو خیلی دوست دارم، غرب رو دوست دارم، در غرب رو دوست دارم. بعد از اینکه با کهی روش نشدم، دم کهی رو هم خیلی دوست دارم. وگه توی این فصل در حال حاضر شد جایی که خیلی دوست داشتم الان باشم جایی که فصل بهار و تابستونش رو تجربه کردم و بهترین سفرهای زندگیم رو اونجا داشتم و خیلی لذت بردم از سفر کردم به اونجا و دوستشم یک بار پایزش رو هم ببینم و اونم سرزمین کردستانه شهرها و روزه های مختلف کردستان رو توی اون دو فصلی که دیدم و به خصوص مردمش رو که خیلی خیلی بخی از نزیب باشون آشنا شدم بهشون علاقه من شدم دوستشم یک بار هم فصل رنگا رنگ, رنگ پاییزه اونجا رو تجربه میکردم چه جای زیبایی هم هست کردستان پر از مناظر زیبا طبیعی و سرشار از عشق و محبت اونجا میدونم همونطور که اسم اهورام آنوشه تخت اهورام از باست خدیقتن بله کاملا درسته عشق از دیده هر کسی مفهومی داره ممکنه بگی که از دیده تو چه تصفیری داره من معمولت فرمی کنم واجبه عشق اظهار نظر نکنم یا این واجبه رو تعریف نکنم چون به باور من عشق یه چیز کاملا لمس کردنی و زندگی کردنیه عشق رو باید زندگی کرد من نظرم مثلا بسیاری راجع به اشک خوندم نظرهای زیادی جمع ماله تزیادی هیچ کدومشون منو قانع نکرده و به خانی دریافت من هیچ وقت نخواستم که اش به تعریف کنم یا از طریق نظرهای راجع به اش بکنم و فکر کنم فقط کسانی که اش رو زندگی کردن لمس کردن می‌توانم راجع بهش حس کنم. اما برای من اش یه احساسی که هیچ انتهاایی نداره و هر چیزی که ممکن ارزی تمام میشه مثل اشک نیست. و هیچ مغزی هم نداره حتی محدود به این زندگی و به این دنیا هم اشتیه چیزی فراتر از اون چیزیه که من بطیمم تعریفش بکنم این, این باور من نصد به عشقه درستم میدونم طرفدارای زیادی رو داری هیلا در گوش کنار جهان این چی حسی بهت میده؟ خب خیلی احساس فوقلادهیه من خیلی کنم که کسایی که شغلت رو حدربه نکردن یا کف که قبلا دیگه شوهرت داره سان آدمها همچنین برایشم از دو شوهر دیگه یک اتفاق جذابه یعنی فکر میکنین که دچار یک شانهمان زلت اجتماعی میشی یا اتفاقی بدهد میاری یا افرادشون ما رو میشناسن ولی وقتی بدهد میاریش اصلا بگید من نشده بگی جذاب حالا من متوجه نیستم که من دچار شوهرت شدم خر نیم قاید که به خلص شما کسانی هستن که ابراز لطیف میکنن و محبت دارن وقتی که بار دیگر این قضیه میشی بحث جذابیت نیست، بحث یه, احساس جدیده توی زندگی. یه حس از جدیدی توی زندگیه، حس فوق العاده است. من می‌که افرادی که, که هیچ نسبت خونی و هیچ آشنایی شما باهاشون نداری، شما رو می‌شناسند و بهت ازدواج محبتیم کنند، بهت لودش می‌کنند، و اینکه که این مهربان شما تقدیم می‌کنه، خیلی حس خوبی داره. ولی در, هم در همون اندازه ام داره که نارس، احساس مسئولیت خیلی بالا داره و ادم دچار تأهدات زیادی میشه و حس می‌کنه که بعد از این باید با دقت بیشتری زنگ کنه، با دقت بیشتری رفرا کنه. بعد خیلی موازب باشه که تلک اشکیدوسش دارند و نشکنن، بعد خیلی موازب باش ایتالا قاطششونو برآورد داده کنه. برایم مثل من گیده از دار سال هشتاد و هشت چهارشنبه بود، چهارشنبه شاب بود که من سری کلاس درس خالی مانده از صبح سه صبح فرستم که خودم گذاشتم که اون مقابله کامو دستی سه چهار ساعت نفر. صفحه‌های من بودن. چه بخوایی دم. صبح وقتی پیدا شدند و اینترنت هم باز کردم بالای دو هزار نفر من ات کرده بودم و بالای ده هزار تا پیام، ایمیل، مسیج. من اونقدر تو اون فاصله شدت و صد اتفاق عجیبی صورت می‌گیرم. افتاده بود که من هنوزم که هنوز باقیشده دو سال از اون روزها هنوز هم نتونستم به تکه‌تکه اون پیام‌هایی که برای مامان تحوط بدم. من قرار عرب افتادم از اون، از معدوم که هنوز هم نمیتونم بگم پیام هایی هستن که هنوز نتونستم بخونن آنها و فقط هیچ مرتکب خودم جلو میزنم و بدون پاسخ خوند اینها. اینها همه یک حسی دادم می‌ده که آدم می‌تواند می‌خواد که خودش آن نمیشه و نمی‌تونه پاسخ خود اینها رو می‌خواد ملاقات کشه. هیچ مشکلی نیست ما اینجا هستیم که از طریق سایت بزرگ نوواهانگ و رادیو نوواهانگ پیام تو رو به همه اونها در سر تا سر جهان برسونیم کسانی که تو رو دوست دارن کسانی که طرف دارتن و کسانی که جواب پاسخشون رو هنوز از تو نگرفتن ما از این طریق به اونها خواهیم رسوند خیلی خوش برم که یه همچین فرصتی در اختیار امقای رو گرفت من از این فرصت استفاده میکنم و قلم میخواد به همه اونهایی که توی این دو سال به من پیام د برای من ایمیل فرستادن، برای من دعا کردن، یا به هر شکلی منو مربی همایت خودشون قرار دادن، بگم که واقعا دوستشون دارم و واقعا حضورشون رو توی ذنگی خودم به شدت احساس می کنم و احساس می کنم که مادیون این همه مهربانی و محبت هستن، شاید زمانی که این اتفاق افتاد. و تا به امروز همیشه به این که کردم که آیا شایستگیه این همه محبت شما رو دارم یا نه اما فقط هم میخواد بدونید که دعای خیرتون همیشه و حتی توی سختانی لحظات زندگیم همراه من دوده و من انرژی مصبتی که از شما دریافت کردم و لحظه به لحظه کنار خودم داشتم و این یکی از بهترین یا شاید بگم بزرگترین سرمایه ای زمیدی من است بله خود من یکی از طرفداران پراپا گرست هستم که تمام سروده ها و شعرها تو در سایت دنبال می کنم و این باعث افتخار من بود که برای اولین بار یک مسایبه رسمی از رادیا با تو داشته باشیم هیلا جان از خداوند مهربان آرزومندم هر جا که هستی سلامت و پابرجا و استوارد در کنار کسانی که دوستشون داری باشی وامیدوارم سال 13 در کشورمون برقرار باشه و مردم ما در آرامی زندگی کنند بدونه یه چیز کمبود و دغدغهای. در آخر ازتون تشکر میکنم که با اسه افتخار و سر فرازی ایرانیان هستی. من هم از شما و رادیو خوبتون خیلی تشکر میکنم و شما که میفهمیم که این سال رو میشنواین خیلی خوشحالم که حتی اگر در سال دویی تر از این ایران بلی می‌تونم با هم و تنها نخودم و با هم دبانا نخودم صوفت سخنم. امیدوارم که این فاصله‌ها کمتر و کمتر بشه و دل‌های ما با هم نزدیک‌تر و نزدیک‌تر. امیدوارم. خیلی ممنون هیلجان از اینکه وقت توبه مدادی و همچنین تشکر می‌کنم برای تمام شهرهای زیبات که درختیار مردم کشورت گذاشتی. بیشتر از این وقت تون نمی‌گیریم. امیدوارم روزی از نزدیک بتونم ببینم اد و گفته‌گویی باهم داشته باشیم. ازت خداحافظی میکنیم تا دفعه بعد خدا نگهدار خدا نگهدار و امینم